سوال کردن چطور می توان به بصیرت دست پیدا کرد یعنی اینکه هر دوره و دوری تشخیص بدهیم که چه کاری انجام بدهیم و راه درست را انتخاب نماییم بصیرت نگاه ناپزه آگاهی ناپز رو میگن بصیرت در قرآن یه تعبیر دیگه‌ای برای بصیرت فرمایش کرده بولا و اون پرغانه فرق بین حق و باطل گذاشتن یه توانی است که میتونه بد خوب رو جدا کنه از هم تشخیص بداردم فرماد اگر تقوا رو پیش خودتون بسازید من بهتون فرغام میدم بهتون توان تشخیص بد رو از خوب، درست رو از نادرست، حق رو از ناحق بهتون میدم، کلاس هم نمیخواد تقوا یعنی مقدمی گناه رو با اختیار نچیدن مختزیات و زمینه گناه رو با اختیار خودش آدم نچینه میشه تقوا اگر این رو مراقب آدم با دست خودش زمینه گناه رو درست نکنه خدا بهش حدیه زیادی میده یکیش فرق بین حق و باطل که اسمش همون بسیلت هم میگن تو هر زمانی در هر مکانی تشخیص میده که خوبه کی بده می کنی بیان کنید چراییشو؟ نه یعنی حس می کنی یا حالا حس می کنید یعنی یه این آدم خوبی نیست این جمع جمع خوبی نیستن. خیلی ازش توضیح بخواهی بگه اینا مسیر حق رو نمیون معلومه برد. سوال کردن که برای کم کردن یا برحضر داشتن دوختر و تسر جوان در از تلفن همراه راهی باید داره؟ اگه راهی شناختیم به ما بگیم با این قضیه شاد و نمیدونم کرونا و نمیدونم یه حرفا بچه های کچیک یاد کرده یعنی کار بلدتر از خیلی بزرگتران یه مجموعه باید دست به دست هم بدن که رأسش ما ملبسینی به این لباس هستیم و مهمترینه اینه که ما اهل عمل بشیم میشه کارها را کم کم درست کرد فرزندی سنش قبل از تکلیف هستش سوال کردن چه کار کنیم جا سن قبل از تکلیف به نماز و تکلیم به شرک شرخ آمندشن؟ در شرق مقدس بحث تمرین، عبادات تمرینی رو مطرح کردن نماز تمرینی، روز گرفتن تمرینی هجاب تمرینی این ها به صورت تمرینی وقتی قبل از تکلیف اینها ملزم میشن باور میکنن که باید رو انجام بدن وقتی میرسن به تکتیف دیگه سختشون نیست آیا فلسفه در فهم موارف دین تاثیری دارد خسورا خانتنش چه کاری لازم است؟ فلسفه منظور فلسفه اسلامیه فلسفه قرب که خوب موضوعش چوداست و بحثه. جدای خودش خودشو داره اما فلسفی اسلامی اسمش اسلامی اما در عمل پایده مهمش جوالان زهنه کسایی که پلسفی می کنن کسایی که ریاضی می کنن زهنشون بیشتری داره این مهمترین پایده خوندن فلسفی و کتاب فلسفی رو آموزش کریفتنه اما در فهم دین ایچ تأثیر نداره یعنی اگر قباید فلسفی رو بدانیم دین رو بهتر میفهمیم. و اگر ندانین مثلا نقصی هست این اصلا اینطور نیست دین نزل به روح و لأمین قلبک لتکون من المنزلین بلسان لسان عربی مبین قرآن به زبان عربی روشن بیان شده لذا ظاهرش خجته همه فوقها همین بزرگان شیعه و سنی باطن قرآن رو کاری ندارن معنای ظاهریش رو میگن حجت حجت یعنی چی؟ یعنی تقیقه معنای ظاهری رو میتونید عمل کنید اگر به خلاف هم عمل کرده باشید بدون اطلاع معزور هستید ظاهر روایات هم همینطوره ظاهر روایات حجته انتها بر اینکه این, که این معنای ظاهری رو از معنای غیر ظاهری تشخیص بدیم. درس میخونن ادبیات میخونن نمی دونم رجال میخونن فقه و حدیث میخونن فقه و قرآن میخونن در حوزه ها حدود مثلا قریب به 20 سال درس میخونه بلد میشه که این معنای ظاهر قرآن و روایات رو چجور بفهمه الفصف تهیج ذهنه آیا ی از علما از اصول فقه استفاده می‌کردند بله قدما وقتی میگن مقابل متأخرین قدما یعنی اونهایی که از قرن پنجم به قبلن تا قرن سوم اقدمین هستن اونهایی که اصحاب ائمه بودن مطالب ائمه رو می‌نوشتن و های زیادی از اقدامین هست. از قرن سیبون تا عباقل قرن پنجام متقدمین هستند. بهشون میگن قدما. متقدمین مثل مرحوم کولینی، مثل مرحوم صدوق، پدرش، مرحوم شیخ مفید، شیخ توصی، سید مرتزا، سید رازی، بزرگترای بزرگتر های قدما هستن. و خیلی از افراد دیگه ابن زهره و امسال این ها ابن براد. دیویز سال بین قدما و متأخرین فاصله افتاد یعنی مغل حمله کرد منکوب کرد شیعه و رو ریخ به هم کتاب سوزی شد خیلی از کتاب های شیق توسی از بین رفت این مقدار کتابی که الان است مرحوم شیق یا مرحوم مفید سید مرتزا و همون این ها رو برداشتن فرار کردن مرحوم شیق توسی اومد پنهان شد اطراف بغداد، بغداد زندگی میکردن، علمای مظاهب مختلف، اونجا پای تخت بود، مثلا. پرار کردن، رفتن، به اشایر مثلا پناه بردن، بعد از اینکه آب از آسیاب افتاد، شیخ توسی اومد کوفه. کنار مجره امیر سلامون علی، اونجا پناهنده شد، کم کم کم کم، بحث حوزه با اینها رو در نجب راه انداخت دیگه سنشم بالا بود حال کار دیگه نداشت ولی تونست این کار بزرگ بکنی که حوزه رو راه انداخت کتابهایی که نوشته همهرو در بغداد نوشته وقتی اومدن تشریف وردن کوفه و مشرف شدن به امیر امیرالمومنین دیگه عواخر عمرشون بود دیویست سال تا زمان محقق هلی فاصله افتاد. افول حوزه شیعی بود. مرحوم محقق هلی اومد در هلی هنگامی حوزه های شیعی رو شروع کردن. هلی هم که شاگرد خوغلاده بود برای ایشون. شاگرد محقق محقق بود. شاگرد محقق خاج نسیر توسی بود. شاگرد احمد ابن تابوس بود برادر سید ابن تابوس اینها اومدن احیا کردن حوزه شیعی رو و متأخرین دیگه اومد تا زمان شیخ بهایی شیخ بهایی یه تحولاتی مجدد ایجاد شد در دروس حوزه که متأخرین متأخرین بهشون میگن ماها وارث یه همچین بیستلا حوزه‌ای هستیم خوزه متحقیلی پر بله قدما همهشون اینکاله بوده به احل السونت را رشته چون دین احل محقق هلی خواست رو بنیویسه شرایط علی که خب متن دقیق فیخ شیعه هست از روی موهنی ابن قدامه ترتیب بحثا رو نوشت. اون شرح کبیر ابن قدامه عبید الله ابن قدامه اون رو گزاشت لوش باب ها رو از اون انتخاب کرد. منطقه مبتنی بر مستندات خودمون. عباراتش دیگه قالب بندیش از اونها گرفت. مرحوم علامه علامه هلی خوبی اجوبه ای بود. خدا درستش کرده بود که احیا کنه شیعه رو و حوزه شیعه رو. وقتی اومدن ببیننش از مثلا شهرهای دیگه، تو کچی داشت بازی میکرد. با بچه ها داشت بازی میکرد، پرسیدن منزل علامه هلی کجاست؟ اون هم تو بچه ها بود. اپتر مثلا اونجاست، خندیدن بچه ها، چون یکی بود. تا رف بره خونه از اون بره از دیوار و پشت دوید را پلید تو خونه اولو بسوشت میکرد این چهست باید این هم بود که اونجا داشت بازی میکرد نابقهی بود اشون اومد همون متنای استاد رو شرح کرده شرح شرایط نوشته اصول نوشته اما محقق اصول مختصری نوشتشون اشون اومد مفصلش کرد. رجال نوشت. ست کتاب رجالی نوشت. همه رو از اهل سنت، قالباش رو گرفت. مثلا اصول ابن حاجبه. اصول ابن حاجب رو امد نوشت و نظرات شیعه رو بر همون مد اضافه کرد. نه اینکه ما اصول سیبت اونا رو میخونیم. نه قالب هموناست رجال رجال هم همینطوره. از ازونا گرفته شده و متنش رو خودشون نوشتن. لذا اون رجال متقدمین کتابی بود. رجال نبود اصلا. پهلی بله کتابی بود. فهرستی بود. کتابی بود. مویدن اینا رجالیش کردن. ما هم همون رجال رو داریم هم. بله از اونجا دیگه بحث خبرباهد و همسال اینا در اومد بله. برموید که فلسفه دیر در واقع ایمان آوردن تاثیر ندارد ما در مقام اعتبار قبل از اینکه بخواهیم ایمان آورده باشیم به اسلام که از مدون اسلامی اینها استفاده بکنیم بایدتاً از سبابه های احلامی برده. به مسئله مربوط ایمان میاریم که حالا بعدش مراجعه می‌کنیم به مدون است. اون مرحله که صرفا داره از این دروقه عداله عقلانی استفاده این که از این اسم شید؟ در ارتباط با اعتقادات ما دون راهکار برای رسیدن به اعتقادات داریم یه اعتقادات عقلیه که همین طور که میفهمید مستند به براهین و استدلال ها و مثل برهان امی، لیمی برهان صدیقین بو علی که برخارا درست فلاسفی ماشاین هستش متنایی که صدر در کتاب هاش داره نها همه استقلاله استقلاله که پایی اعتقادات اقلی رو درست میکنه استفاده از اعتقاداتی که پایش اقلی هست و فلسفه و حکمت پشتوانش هست این جواب خصمه. قرآن روایتی که قبول نداره، اونی که ملحده اونی که مثلا کمونیسته، وقتی میگه خدا نیست، باید با عقلی که او هم قبول داره باهاش صحبت کنی. استدلال‌های عقلی رو در فلسفه، در کلام مطرح کردن. برای اینکه او رو خاموشش کنی، شک ایجاد میشه در اذهان جر ها باید با استدلال‌های عقلی قانع بشن. اما اونی که ایمانزاز یعنی باور میاره مسائل عقلی نیست مسائل عقلی قانع میکنه انسان رو ولی اطمینان نمیاره به اطمینان قلبی منظورم اطمینان عقلی میاد یه دو, دو تا چهار دیگه هر مثلا مسبب یه سبب میخواد هر معلول یه علت میخواد قرآن هم بهش پرداخته این مقدار مثلا مواسه استدلالی رو اپلا ینظرون ایلال ابلی کیف قلقت نمیبینید با چه تیبت و ساختی برخورد با چه سازمان مثلا سازه خاصی برخورد این مصنوع یه سانعی دارد مثلا این معلول یه علتی دارد اون علت خدای متعال. اما این که میخوایم باور کنیم خدا رو میخوایم باور کنیم از راه استدلال عقل ما قانع میشه دل ما نشونایشم اینه من من از که کردم استاد کل این فن در زمان ما که از معاصرین هست از بزرگان عازم فلسفه استاد مثلاً علامه حسن زاده رحمت الله علیه، استاد آیت الله عزما جوادی آمولی و استاد همه اینای که پلیسف خوندن تو زمان ما اینو از کردم اگر من مثلاً از آیت الله خوشوکت نشنیده بودم اصلا باورم نمی شود. ایشون گفتن که آای مهدوی کنی مرحوم برای من نقد کردن که من رفتم پیش این استاد مریض بود تخت راز کشیده بود و با همون مریضیم از دنیا رفتم گفتم اصدادنه حق استادی رفتم که سر بزنم نشسته بودن دو و خدمت ایشون گفتم ای چند دقیقی بشینم بسری که ازیاد از نشن سرم یه دفع بالای تخت ایشون افتاد دیدم یه عکس دختری هست باب عکسی رو زدم به زیبا خیلی ناجور بود مثلا لزیته سرهنگ دوستم پای او دید استاد دید که من نگاه کردم سر خندید خوب سبیه هستن در فرانسه ملکی زیبایی اول شد من پیش خودم گفتم این هزیان میگه حتما مثلا خوب نیست بذم عکسش که پولوس چون میگه بعد اگه اونم مثلا غیر دخترش بود و نمیزدند کسایی که اونجا بودن میدن این حال حالش بده ولی چیزی چیزی را اینکه دست کردی بدی با اونها یواشکی میارمیشتن نه با افتخار شده بود اون بالا در عین سیادتی که داشته عالمی که بوده صاحب نظر در فلسفه اسلامی اما خب اینجوری میشه گای ایمان رو از صفات باری باید به دست بیاریم اینکه خدا رحمان و رحیم است خدا بسیر است خدا قادر است این جوشن کبیلی که انشالله شاءالله شب ها می من نگاه میکنین اسامی پروردگار رو میشمره به قسم میدیم. اون اسامی صفات خداست از راه سپات میتونیم مؤمن به خدا بشین. باور به خدا پیدا کنیم چون میبینیم یه سپاتی داره به کار ما میخوره به درد ما میخوره ما رو تر می‌کنه میکنه خدا یا تو خدا اداده ما بریز هی hey, اسمیشو صدا می‌زنیم و ازش نیازها منو میترمیم اون روخ نشون میده باور می‌کنیم و بهش تمسک میجویم در نبوبتش هم همینطور در امامتش هم همینطور در معادش باید از مسیر نقلیاد باورمند بشین اقلیاد قانع میکنه ذهن رو اما روح روحتاببعی نمیشه سالال کردن آیا دو زدن صلب بچه جادر. گاه این مادرات داد بزنن ای نداره. از مادر ها بچه ها توقه ندارن. مادر دیگه حالا یه ناشگونی هم ازش میگیرهیه دو تو میزنه تو سیینچ که خودذ شده و در بذرت نکنین داغ جگر نشین پان نشین. عی میکنه بعد میاد دور میمثل میبوشدش تو بغلش میشین ولی از بابا ها توق ندارم. بابا ها باید آرام و متینو گفتش که به پیغمر اکنم اصل کردم بالاخره ما باید یه هندی هندی چیز داشته باشین تو قنه مردی خ شاقط به دیوار باشه. ولی دست بهش نزنین یعنی کهنی این که حیبت خود تو داشته باش اما در این حیبت، مهربانم باش. ان خدا به همون توفیق بده بتونیم در خدمت دین باشیم به برکت سلوات بر محمد و محمد.